اما در یک نکته خیلی اساسی به شما میخوام بگم که چه چیزی جلوی استفاده مفید و مؤثر از هیپنوتیزم رو در زندگیتون خواهد گرفت و جلوی اینکه هیپنوتیزم به ابزاری مؤثر تو زندگیتون تبدیل بشه رو میگیره و پاسخ اینه که ببینید شما چه بخواید خودتونو خود هیپنوتیزم کنید و به عنوان مثال احساساتتون عوض کنید نمیدونم باورهاتون عوض کنید وارد تونل واقعیت دیگه‌ای بشید برای هر کدوم از این استفادههایی که بخواید گامی بردارید تنها مانه و یکی از اساسی ترین مانه ها اینه که حس کنید اون چیزی که الان دارید تجربه می کنید واقعیت و حقیقت محسه. اگه میخواد روی خودتون اثر بذارید اگه میخواید روی دیگران اثر بذارید اولین گام شما به عنوان یک استاد هیپنوتیزم این هست که آگاه باشید و بفهمید که اگه طرف مقابل شما از چیزی ناراحت اگه نظر خاصی داره اگه، به نظرتون میاد که ادروین اصلا نمیشه اثر گذاشت. تمامی اینها توهمه همه، همینها تونل های واقعیت و یه هیبنتیزور خوب کسی که اول از همه اینها رو ریجکت کنه نپذیره. یعنی فکر نکنه که ای این الان نظرشی پس تمام ای این الان ناراحت شده دستم پس تمام ای این الان خوشحال شده دستم پس دیگه خوشحاله. نه. هیبنتیز همینو میگه. هیبنتیز میگه که چیزی که الان خودتون یا یه فرد دیگه داره تجربه میکنه فقط یک تونل واقعیت نه حقیقت محض و دقیقا به همین علتی که شما میتونید باش بازی کنید، تغییرش بدید، اثر بذارید روی خودتون یا دیگران. بنابراین اگه میخواید یه استاد هیپنوتیزم بزرگ بشید، یه هیپنوتیزور عالی بشید و اثر بذارید روی خودتون یا دیگران، هر وقت خودتون بده، هر وقت خالی یه نفر دیگه بده و میخواید اثر بذارید روی خودتون یا روی دیگران یا به صورت کلی هر وقت می خواهید روی خودتون یا روی دیگران تو هر زمینه دیگه اثر بذارید یه تغییر میخواهید ایجاد کنید اول هم دقت کنید اون چیزی که الان دارید تجربه می کنید حقیقت نداره و درک میکنم برخی اوقات ممکنه که خصصا اولای کار که هنوز حرف ایپناتیزم نفهمید نفهمیدید که واقعا هیچ چیز حقیقت نداره و شما داری حقیقت میدید بهش و وارد اونتون رو واقعیت میشید. ممکن در ابتدی کاری مقدار کارتون سخت باشه مثلا شما یه فوبیا دارید از انکبوت میترسید از ارتفاع میترسید و وقتی با ارتفاع مواجه میشید بدیهیه که خیلی براتون واقعی به نظر میست اما ته حرف هیبنوتیز و بنیاد هیبنوتیز روی اینه که داری جمله رو در حقیقت جهان میگه و دقت کنید نمیاد به شما بگه شیعاید این طوریه داره از عمق جهان برای شما حرف قطعی میزنه میگه هر چیزی که تجربه میک یا کسی داره تجربه میکنه باور فکر نگاه خاص نظر،, نظر خاصه که حالا شما میخواید کسی قانع کنید یا هر چیزی همه اینها فقط یک تونل واقعیت حقیقت محس نیست و دقیقا به همین علت شما میتونید عوضش کنید اگه این رو تو ذهنتون داشته باشید دیگه از عوض کردن خودتون یا دیگران هر چقدر هم که وضعیت سخت و حاد به نظر برسه نامید نخواهید شد